الحمد لله و والسلام على رسول الله وعلى آله و ومن والاه من و بعد السلام عليكم و الله تعالى وبركاته خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاس خوزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت های خوبش همه نعمتهای خداوند خوب هست چون خود خداوند خوب هست همه نعمتهای خداوند مفید هست چون خداوند مثبت نگر هست و هیچ موقع دید منفی نسبت به ما و شما بندگانش ندارد همه نعمت های خداوند برای ما و شماست و ما بکنم نعمتیم فمن الله هرچین نعمت در شما هست از جانب الله هست پس خداوند همه نعمت ها را صرفاً به خاطر بندگانش آفریده و بندگانش را برای خودش در حقیقت خداوند با ایجاد این همه نعمت های خوب توجه ویژه خودش را نسبت به بندگانش ابراز داشته زیبنده و شایسته ما و شما بندگان خدا نیست که توجه ویژه خداوند را با بیتوجهی به نعمات های خداوند پاسخ بگیم استفاده صحیح و درست از نعمت های خداوند در جهت رضای خداوند در حقیقت احترام گذاشتن به خداست چون خداوند دوست ندارد نعمت های ارزشمند خداوند توسط بندگانش پایمال بشود فرقی نمی کند چه تکه نانی روی زمین افتاده باشد یا یک برگ سفیدی که می شود بر اون برگ سفید علم نوشت یا یک صفحه از قرآن هم نان محترم هست نعمت خداست هم کاغذ و برگی سفید محترم هست و هم صفحه قرآن به هر سه باید احترام گذاشت همه نعمت های خداوند هستند و هر کدوم در جایگاه خودش رشد و توان می آفریند. در جایگاه خودش ارزشمند و مفید هست همه نعمت های خداوند رشد توان توسعه سلامت سعادفافرین هست چون خداوند بندگانش را دوست می‌دارد و طبیعی کسی که کسی را دوست می دارد خواهان رشد و توسعه دوستش هست اگر پدری واقعا پدر باشد از رشد و توانمندی و توسعه فرزندش بینهایت خوشحال می شود. مگر اینکه که خدای نا اون پدر پدر نباشد کدوم پدری راضی می شود که فرزندش مطاد شود مشروب شود اهل دود باشد درس نخوند موزی باشد اگر برادر واقعا برادر باشد قطعا از رشد و توسعه و ترقی و تعالی برادرش خوشحال می شود اگر واقعا خواهر خواهر باشد اگر واقعا معلم معلم باشد کدوم معلمی دوست ندارد که شاگردش را موفق تر از خودش بداند اگر معلمی و مسلحی و مربی و عالمی تلاش کند که بندگان خدا خوب بشوند ولی در تصور او این باشد که مثل خودم باشه این حد اقل دو وصف بد دارد هم حسود است و هم بخیل معلمی دلسوز است و خیرخواه است که بگوید چیزی که خودم بهش نرسیدم باید شاگردانم بهش برسند این انسان بزرگواری است ولی اینکه مثل خودم باشم یعنی تحمل دیدن توسعه شاگردانم و فرزندانم بیشتر از خودم ندارم همه اینها وجود داره اما خداوند اینطوری نیست الله و ولی الذین و آمنو الله دوست بندگانش هست الله خواهان رشد و توسعه بندگانش هست الله علیم است. فکر نکنید اگر بندی نماز بخواند اما به علم نپردازد خداوند او را دوست می‌دارد. نماز خدا را ارضا کند نماز منهای علم، علم دنیا و آخرت فرقی نمیکنه. چون ما دو تا زندگی داریم. هر دو زندگی دارای علمی هست علمی که این دو زندگی را برای ما آباد بسازد عمرانی و توسعه و توانمندی ایجاد کند علم دنیا به اندازه نیاز ما از دنیا دنیای آباد مستقل مترقی پیشرفته و آخرتی آباد و با توفیقات هر دوتا علم دارد اصلا افتخار نمی کند خداوند اگر که خداوند خودش رو علیم معرفی کرده بگه من افتخار می کنم به این بنده جاهلم اصلا محال است خداوند خودش رو حکیم معرفی کرده علیم و حکیم از نام های خداوند است به بنده کودن نفهم احمق افتخار نمی کند کسانی که تصورات واهی دارند تفکرات پوش دارند، حرفهای پوچ و بیمحتوی میزنند، زنن نیتهای پوچ و بیمحتوی دارند. خداوند حکیم است همه سخنان خداوند مملو از حکمت است کاملترین حکمت قرآن است حکمتی به اندازه کلام خدا دیدید چطوری این خداوند بندگان غیر حکیم را بپسندد؟ خیلی ها فکر می چون که همین خم و راست بشوند کافیه که جانشین خدا باشن. اصلا کافی نیست تو بحث علم کشور آلمان از هر یک میلیون نفر جمعیت شیش هزار جن برتر دارد شیش هزار ژن برتر هر ژن برتری معادل پروفسور حسابی ما نه معادل افراد عادی ما کشور ژاپن و ایتالیا بین پنگ هزار تا پنگ از هر یک میلیون نفر خیلی حرفا اما کشور عزیز ما با این همه ادعایی که داریم از هر یک میلیون نفر 1 نیم نفر ژن برتر نه اینکه ما ژن برتر نداریم نه اینکه ما استعداد نداریم یونسیف آمار گرفته گفته با استعدادترین دانش آموزای جهان دانش آموزان خطه جنوب بلوچستان ایران‌اند همونایی که دست تو خاک می آورند همونهایی که استعدادهاشون شکوفا نشده جهت داده نشده اشرار شدند همونایی که شاید تو تجارت مواد مخدر روش کنند امسال سال شکوفایی و نوآوری نامگذاری شده چه نام خوبی چه صفت خوبی این صفت زیبنده انسان مؤمنه انسان مؤمنی که همیشه در حال نوآوری است همیشه در حال شکوفایی کشور ما اگر 18 تا 20 میلیون دانش آموز داشته باشد یکی از جوانترین کشورهای دنیاست و علمی اگر در دنیا باشد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده لوکان العلم منوطن به لتناوله رجال من فارس اگر علم و دانش متعلق به ستاره پروین باشد مردانی از ایران زمین به اون دسترسی پیدا میکنن. علت چیه؟ از یک میلیون یک و نیم نفر برتر در کشور ما. یعنی بچه ها درس نمیکنن یعنی شغل کاذب یعنی قایق بنداز تو دریا برو خب و مسقط و دوبه جنس بیار کافیه، دکتر آزمندیان میگوید تو بحث تکنولوژی فکر اگر انسان مسلمانی خودشو پیدا بکند هر انسانی یک پروژه هست ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملتر از این میگوید. گرچه جناب دکتر و پروفسور هم خارج از کلام خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حرف نمیزند بسیار انسان وارسته است پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانها را اینطوری معرفی کرده اناس و معادن که معادن الذهب و الفضه خیارهم فی الجاهلی خیارهم فی الاسلام اذا فقهو میگه هر انسانی چون معدنی از طلا و نقره است ستا جانب. میگه هر انسانی چون معدن تلا و نقره است الناس و معادن انسان چون معدن ها هستن که معادن ذهب و همچون معدن های تلا و نقره خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فل الاسلام بهترین اونها در جاهلیت بهترین اونها در اسلام به شرطی که در و و بینش و تفکر و اندیشه و فهم و درایت داشته باشند خوب تصور بکنید میگه هر انسان اگر فهم و درک داشته باشه این عقل و باز بکنه فکر تعطیل شده رو فعال بکنه حس فکر کردن در خودش ایجاد بکنه این انسان میشه یک معدن یعنی هر ثانیه ای عمر این انسان یک پروژه است معادنی میشه که تا دلت میخواد استخراج کن پایانی ندارد عمر نفت در دنیا شاید 20 سال دیگه باشد اونم فقط در منطقه خلیج فارس و دریای خزر این همه سر و کله که خورد میشه برای دسترسی به این منابع چون عمرش دیگه تقریبا شاید 20 سال باشه ولی عمر انسان تا پایان عمر دنیاست توانی که عقل انسان و تفکر انسان دارد انسان تنها موجود توسعه یافته و توسعه پذیر است اونقدر ظرفیت سازی در انسان شده بی حد و حسر همه این ظرفیت ها جاگذاری اند... جا شده، جاسازی شده در فکر انسان کلیدش هم دست خودته. هر هرچی بیشتر فکر کردی مثبتتر فکر کردید، جهانی فکر کردی خودت و مرتبطینه به خودت توسه میدید. پس هر انسانی وقتی که خودش رو پیدا میکنه این انسان هر عمرش یک پروژه است ما بجای این اینکه تو این کوها بیفتیم دنبال معدن گچ و آهن و سنگ و ماسه و این معادن بیفتیم در جامعه اسلامی و انسانی بیفتیم معدنهای کشف بکنیم که اگر اون معدنها کشف شد جامعه و بشریت بهرمند خواهد شد، توانمند خواهد شد چقدر استعداد بکر دست نخورده تو همین قشر سیاد هست سعی نکن که سیادی تو برای کمک به خانواده رو حساب تحصیلش باشه رو حساب تفریحش بذار قرار نشده همه ما سیاد باشیم، فرزندانمون هم سیاد بکنیم و سیاد شدنش به عنوان ادامه تحصیلش باشه امروز دیگه سیدم داره صنعتی میشه و این ضربه است که خودمون به خودمون میزنیم همه های خداوند رشد و توان و توسعه آفرینه به این یک واقعیت هست خداوند بندگانش را دوست دارد و خواهان رشد اونها هست بپذیریم توسعه رو بپذیریم اینکه رشد بکنیم بپذیریم اینکه باید توسعه پیدا بکنیم و تنها راهش تک رو فعال کردنه ای در مسجد دیدم که نس شده بود هفته وحدت مبارک باد در کشور ما هفته وحدت در همون هفته ای که حالا اختلاف بین شیعه و سنی هست که حالا دوازدهم یا 17 کاری ندارم ولی تو ظرف یک هفته تو همون ماه ربیع الاول، تو همون ایامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد شده. تو همین هفته وحدت اعلام شده. چیز خوبیه؟ ما الان در هفته تولد پیامبر صلی الله علیه و وسلم هستیم یا در ماه تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ موقع بعد از بعثتش از جزیره العرب از نظر فیزیکی خارج نشدند بجز در سفر اسرا و معراج که کاری ندارم محدودیه جغرافیایی جزیرت العرب معروفه از جزیرت العرب خارج نشدن اما تو مبحث فکر سه تا عامل برای موفقیت انسان لازمه یکی تفکر یکی تحرک و تلاش و یکی توکل تو بحث تفکر سه تا مبحث وجود داره یکی فکر کردن نه هر کسی فکر داره فکر میکنه همه داریم همه عقل داریم نه هر کسی چشم داره میبینه خیلیها چشم دارن ولی نمیبینن نه هر کسی گوش داره میشنوه یا بحث دوم خوب میشنوه یا خوب میبینه یا خوب فکر میکنه نه هر کسی خوب می‌بینه برای همه خوب می‌بینه خوب دقت بکنید نه هر کسی خوب فکر می‌کنه جهانی خوب فکر می‌کنه برای همه بندگان خدا یا اینکه تفقیق می‌کنه انسان‌ها رو از مسلمان‌ها رو از خیشاوندا رو محرم و نامحرم و پس یکی فکر کردن یکی مثبت فکر کردن یکی جهانی فکر کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پیروانش فکر میکرد برای غیر پیروانش هم فکر میکرد برای موحدش فکر میکرد برای مشرکش هم فکر میکرد برای موافقش فکر میکرد برای مخالفش هم فکر میکرد فکر مثبت میکرد علام اقبال لاهوری رحمت الله علیه چقدر زیبا جهانی فکر کردن پیامبر صلی الله علیه و به بیت شعر کشیده. میگه چین و عرب همارا. هندوستان همارا. مسلم هی هموطن هی، سارا ما همارا. چین و عرب میگه مال منه. هندوستان مال منه. مسلمان هر کجا که باشه هموطن منه. خوب دقت بکنید. هر کجا که باشه هموطن منه بعد میگه سارا جهان را کل جهان مال منن همه انسان کافر و مسلمانش مال منن اسلام اونقدر ظرفیت دارد که همه را تحویل بگیرد این دل اونقدر ظرفیت دارد که همه را تحویل بگیرد و کلام بزرگان ما همش اینه نگاه کن چی گفت نگاه نکن کی گفت حضرت علی رضی الله عنهو می فرماین الحکمت دالت المؤمن این وجده فهو احق بها حکمت گمشده مؤمن هست هر کجا حکمت را پیدا کرد اون اولاد ترین به حکمت حکمت از مسلمان باشه حکمت از کافر باشه پیامبر صلی الله علیه و سلم از جزیره العرب خارج نشد اما چون فکرش خارج از جزیره العرب حرکت میکرد بعد از مدت کوتاهی دین پیامبر و آیین پیامبر جهانی شد انسان تا جایی پیش میره که فکرش و نیتش و هدفش پیش برود آیا اسلام و تفکرات پیامبر صلی وسلم در جزیره العرب چون خودش از جزیره العرب بیرون نرفت ظاهرا که پدر بزرگواری به نام آقای عبدالرحمن ترکمانی در گذاشتن. جهت اطلاع عموم خب چه باید بگیم به نظر شما وقتی که این خبرهایی میدن؟ اینا لله و اینا الیه غیر از این دیگه نباید چیزی بگیم. مسئله دوم برای بازماندگان اعظم الله عجرکم و احسن عذاکم و غفره لمیتکم. وقتی خبر به ما میدن باید این جمله رو بگیم اینا لله و اینا الیه راجعون، قبل از این که دیگه به زبان بیاد. شاید در وفات و در گذشت افرادی که سخت مریض باشن یا سالهای سال بیماری های مزمن داشته باشن یا پیر باشن خیلی راحت بگیم انا لله و انا الیه راجعون بعضی موقع پسندش هم میگیم الحمدلله راحت بود خیلی زرشا ولی گفتن این جمله وقتی که یک جوانی که خیلی براتون عزیزه یا شخصیتی که خیلی عزیزه یا همسرت که با عشق باش ازدواج کردی تو عمر جوانی یا شوهرش یا اولادش اگر اولین جمله که بر زبانش آمد و از دلش نشأت میگرفت و جزء اخیده و باورش بود گفت اینا لله و اینا الیه راجعون یعنی مجال نداد که بگه اول بگه آخ چی شد چه خبری این یعنی شکست اول باید بگه اینا لله و اینا الیه راجعون این جمله تعادل دهنده زندگی من توست انسان در زندگی دو تا بال داره برای پرواز کردن و سبک شدن و اوج گرفتن و اوج گرفتن دو تا بال لازمه یکی بال صبر و یکی بال شکر که صبر و شکر هر دو یکی هستند در حقیقت صبرم نوعی از تشکره است. شکره. باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون این قوت و توانمون رو حفظ میکنه قوت و توان آدم چیه؟ ایمان آدم وقتی تو شکایت خدا را پیش خلق خدا کردید دیواری کوتاهتر نبود حالا چه خاکی به سرم بریزم بچه هم بی مادر شدن بچه هم یتیم شدن بی پدر شدن حالا که روزیشون میده حالا که خرجشون میده سبحان الله اگه تو شکایت مادرت بودی که خرجت دار که به اونجا غذا میرسن؟ توسط لوله ناف اونجا تو رو تغذیه میداد خداوند وقتی اون روزیت قطع شد، همون دایل لوله ناف مادر رو گره میزنه روزی تو تو سینه مادر قرار میده. نباید حرفای بی بیبط بزنین. بعضی موقع پارچه هایی میبینیم بینیم می مرگ نابهنگام فلانی را. میدونی چه توهین به خدا مرگ ناب هنگام یعنی زود رست خدا را متهم میکنیم که تو نمیدونستید، این جوان بود، هنوز باید عمری میکرد، باید پیر میشد، بعد میمرد چرا زود فرستادی؟ تشخیص درست نبوده، منش اینه دیگه یکشون را پاره میکنن، خاک میریزن تو سرشون، حرفای بیرفت میزنن قرار نشد اگر یه نفر به رحمت خدا رفت، ایمان ما هم همراه اون بره بهترین جمله که ایمان انسان و تعادل انسان رو حفظ میکنه قبل از این که حرفی دیگر شیطان بهش القا بکنن اِنَّا لله و اِنَّا إِلَيْهِ راجعون هلست. کار خدا شکر خدا الحمدلله. مشهور است که پدری در مدینه بیتابی میکرد فرزند عزیزش توک کرده بود یک داستان دیگه باید یک داستانی هم هست خداوند ملک الموت و فرستاد برو قبض روح جگرگوشه فلان بنده من اسم برد برو پیشش قبض روح جگرگوشه کن. همه عزیز دلبندش وقتی که ملک الموت رفت دید که این پدر خیلی این بچه شو دوست داره ولی امر امر خداست حبز روحش کرد برگشت الله سبحانه و تعالی ازش سوال کرد ملک الموت حبز روح فلان بنده منو کردید قبت ولد فلان حبز روح فرزند فلان بنده منو کردید گفت بار الله خودت منو فرستادی همین الان گفتی برو گفت: نه، میخوام که از شما بشنوم. گفت: بله. گفت: قبدتم ثمره فؤاده، جگر گوشه رو ازش گرفتین؟ بار امر امر تو بود. گفت: بله، ای رب من دستور رو به جا آوردم. اما جمله سو... سال سوم خداوند گفت: فما قال عبدي؟ این نقطه خیلی مهمه. ملک الموت گفت وقتی که جگرگوشش رو ازش گرفتید جگرگوشی که بازی میکرد روح داشت یک دفعه مثل یک چوب خشکی جلابش افتاد عکس عمل بنده من چی بود؟ اینجا خیلی مهمه برای خدا گفت که ای رب ملک الموت میگه حمدک و سرجعه گفت فقط همین دوتا جمله گفت گف همین دیگه هیچ عکس عملی نشون نداد گفت هیچ گفت اون دوتا جمله چه بود گفت حمدکه گفت الحمدلله حمد خدا شکر خدا گفت جمله دوم گفت استرجعه استرجعه یعنی گفت اینا لله و اینا الیه راجون گفت همین دوتا جمله فقط گفت گفت بله دیگه هیچی دست از با خطا نکرد در جواب ملک الموت خداوند گفت که برید در قلب بهشت برید در قلب بهشت ابن لعب هذا بیتا و سموه بیت الحمد. برید در قلب بهشت برای این بنده صبور و شاکر و شاکر گذار من قصری درست کنید بنا کنید و رو سردرش بنویسید. این خانه خانه حمده و سموه و بیت الحمد این خانه حمد، خانه حمد و تشکر بنده شاکر منه پیامبر صلی الله عليه وسلم می هر کسی اولین جملش هنگام مصیبت اینا لله و اینا الیه راجعون باشد و بعد این دعا را بخواند. اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی منها این دو تا جمله بگه خدایا در این مصیبت بزرگ به من پاداش بزرگ بده پاداش بزرگ در مقابل چیه در مقابل صبر بزرگ این دو تا جمله اضافه بکنید اللهم اجرنی فی مصیبتی خدایا به من عجر بده توی این مسیبتم من صبر کردم هیچی نگفتم نه پاره کردم نه موموپرهشون کردم نه جیغ زدم نه گریه های واسدهای بلند نه خاک تو سرم ریختم خلف لی خيرا منها و خدایا این چیزی که از من گرفتید بهتر گزینش کن من بیچاری که عقیدم ضعیفه نمیدونم که تو خزینه خداوند بهترین ها وجود دارد فکر میکنم همین پسر من بهترینه فکر میکنم که همسر من بهترینه فکر میکنم مادر من بهترینه خواهر فکر میکنه شوهر خودش بهترینه من یه مثال میزنم همه تصدیق میکنید که بهترین ها نزد خداست پیانبر صلی اللہ وسلم می فرماین هر کسی بگه انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مسیبتی به فارسی بگید اشکال نداره وخلوف نی خیرم اینها خدا یا من به خاطر تو صبر میکنم به من عجر بده خدا یا چیزی که از من گرفتی مال خودته اختیارش دارید بهتر تو خزینه تو هست بهتر به من بده پیانبر صلی اللہ می فرماید هر مسلمانی و مؤمنی که لحظه ورود خبر مصیبتی این ستا جمله رو بگه خدا در دنیا عوضش چند برابر به او بهتر بهترمینه آخرت که بماند اونجا که دیگه بیت الحمد قصر حمده خانه شکر بقید درست میکنن ام مسلمه اسمش شنیدید امهات المؤمنین یکی از امهات المؤمنین ام سلمة هست. یکی ام المؤمنین عایشه هست، که ام المؤمنین خدیجه هست، که ام المؤمنین حفصه هست. این سته زیاد شنیدید. یکیشون ام المؤمنین سلمة هست، ام سلمة. این میگه من این حدیث و توصیه از پیامبر شنیده بودم تا این که ام س... ابو سلمة شوهرم فوت کرد. میگه من این حدیث رو تجربه کردم میگه شوهرم ابو سلم فوت کرد دو تا جمله اول گفتم جمله سوم نمیتونستم بگم چقدر راحت داره صحبت میکنه میگه جمله اول گفتم اینا لله و اینا الیه راجعون اللهم اجور فی مسیبتی رسیدم به جمله سوم نمیتونم بگم خدا با بهتر از ابو سلمه به من بده میگه من فکر میکردم که ابو سلمه تنها مرد زندگی منه از بس که این مرد خوب بود خوشحاصله با عدم، محترم، پاک، کریم، سخاوتمند، نوازشگر، با محبت هر صفت خوبی که تو انسان خوب باشه تو این میگه بود کاری به فکر زن و بچهش هر کاری کردم دو جمله میگفتم تا جمله سوم ایست میزدم تو ذهنم می از یعنی کسی بهتر از ابو سلامه دیگه شوهر برای من و بابا برای پسر من پیدا میشه ولی یه لحظه فکر کردم که خیر در اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته این وسواس شیطان نیست بر خودم پیروز شدم یک دفعه گفتم بعد از که این همه کرانچار رفتم با خودم یک دفعه گفتم که وخلوفی خیرن منها خداویا بهتر از ابو سلمه به من بده میگه لاحظ شدم مثل این که یک بار سنگینی رو دلم بود تا همین که این جمله رو گفتم سبک شدم میگه بعد از مدتی صدای حلقه در دروازه خونه آمد تق تق تق در که باز کردم قاسی دیه. قاسد کی هست؟ من قاسدم از طرف رسول خدا صلی الله عليه و سلم خواستگاری ام مسلم. حالا چی میگی؟ میگه جا خوردم. یه واردگی بگو. من قاسدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواستگاری شما. که شما بشی همسر رسول خدا صلی الله علیہ به نظر شما کدومی که اصلا قابل مقایسه هست ابو سلمه با رسول خدا قابل مقایسه هست آن محمد که احمدش خوانند نور چشم دو آلمش محمد صلی اللہ علیہ تا جایی رفت ده تا ما معراج داریم ده تا معراج هفت وقع آسمان هفتم معراج رفت سقف آسمان هفتم بهش میگن صدرت المنتهى این معراج هشتم بعد از صدرت ها مقام قلم بعد از مقام قلم عرش خدا این تا آسمان هفتم رفت سه تا دیگه نرفت گفت یک قدم جلو بیام اینجا حد دو حدود منه نور الهی بالهای و رو برای زر زر از اینجا دیگه باید خود تنها برید جبرائیل هفت تا محراج رست پیامبر صلی اللہ علیه ده تا محراج رفت. حالا پیامبر صلی اللہ علیه آمده خاستگاری ام و سلمه. همه که با خودش فکر میکرد که بهتر از ابو سلمه است، نمیتونم بگم و آخر گفت بعد از این که امه سلمه بود مادر سلمه بود شد امه المؤمنین کدومی که بهتره وقتی میگیم امه المؤمنین یعنی هیچ مردی از امت محمد نه در حیات رسول الله صلی علیه و وسلم اگر اون زنش متلقه بشه نه بعد از حیاتش اجازه نداره تو دلش بیاره که من با این ازدواج بکنم حرامه همونطوری که مادر انسان بر انسان حرامه یک زنی که مادر یک بچه بود حالا شده ام مول مؤمنی به نظر شما اگر ابو سلمه خدا زندش بکنه یک بار دیگه بیاد به دنیا جوانتر از شب زفافش بشه از اون شب عروسیش جوانتر بشه و جمال یوسف هم بشه بدن. به نظر شما حاضره که به رسولنا بگه تو برو شوهرم جوانتر شده من الان زن این میشم تو چند تا زن دیگه هم دارید. این افتخار دیگه تحت هیچ شرایطی از دست نمیده. ما باید خودمون را وفق بدیم با فرهنگ دینیمون. تو شادی باید خدا رو فراموش نکنیم. دیشب من گروک بودم. ده تا داماد بود. یک مراسم خیلی خوب چهار پنگزار نفر آدم از کل منطقه آمده بودن. صفا صدی چند شب پیش گلدار بودم بیست و یک داماد یکی از جوانای اونجا که مجری بود گفت که از آبا و اجداد ما نقل می کنن از آبا و اجداد نقل می کنن که قدیما می اگر کسی تو زندگیش مشکل داره بره پیش تازه داماد و تازه عروس تقاضای دعا بکنه که اینو مستجاب و دعا هستن اینو؟ شما قبول دارید؟ عزیزمون میگه نه تازه داماد، تازه عروس مستجاب و دعا حق هم داره ولی اگر تازه عروس و تازه داماد مستجاب و دعا نباشه اون پدر سال ای که 80 سالشه هرچی شهوت بوده تمام شده اگر دختر 15 ساله ملکی زیبایی دنیام جلوش بذاره دیگه تحریک نمیشه اینو یقین بدونید که اون پدر مستجاب و دعا نیست چون اگر دلش هم میل بکنه دیگه هیچی نمانده که میل بکنه ولی کسی که بیست پنج سالشه شهوت به اوج مشکلات داماد شدنم به اوج خرج و مخارجم اوج مبانی برای به عفت وجود داره برای پایمال شدنم وجود نداره زن حلال 50 میلیون من حرام مفتی این جوان اگر شهوتش کنترل بکنه از خدا بترسه هسلیم امر خدا بشه به ازدواج پناه ببری یعنی به خدا پناه برده کسی که میتونه زنا بکنه بگه من از خدا میترسم خدای و کمکم کن تا ازدواج کنم من نمیخوام شرمنده تو باشم یارب تو صاحب فضلی بر من به نظر شما این جوان مستجاب دعا نیست چقدر خوب گفتن این پیر مردای گلدار و در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله خداوند در حدیث قدسی اعلام کرده که سه نفر من بر من واجبه که ازشون حمایت بکنم نفر اول مجاهدی که اصله گرفته فقط برای رضای من نه برای شهرت نه برای غنیمت و مال برای وعده هایی که بهش دادن تو رو فلان میکنین تو رو فلان میکنین فقط برای نشر دیر من و رضای من جهاد میکنه. من اینو باید نصرد بکنم نفر دوم جوانی که در معرض خطر فحشا هست برای حفظ افتش رو به ازدواج می آورد که افتش رو حفظ بکنه و از من میترسه فقط گفته حتی این جوان اگر فقیرم باشه من از فضل خودم بی منت پدر و مادرش من از فضل خودم از در غیب کوکش میکنم کنم و غنیش میکنم. جوانی که به این سنفره و خدا میگه من از شمایت میکنم این مستجاب و دعا نیست ولی امروز آیا کسی میپذیره که بره پیش تازه دامادا بگه ارتماس دعای خیر دارم دعای شما مستجاب میشه من مریضی دارم سعب العلاج دکتر گفته من کار از من ساخته نیست گفته فقط دعا میتونه کارساز باشه دامادی که مسته هنوز اون نعشگی وقتی شبش که شب آخر عروسیش بود دست ارکست هم. همه مزن و مرد رقصیدن. عروس خانم هم از ساعت ده صبح بردن آرایشگاه، نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز اشان نخونده اعتماس دای خیر داریم آقا دامادم که نماز نخونده مشروب هم خورده مراسمش هم پر از مشروب بوده و بی افتی چرا برادرمون سرشو اینطوری میکنه؟ تازه داماد مستجاب و دعا نیست از کی مستجاب آن دعا نشده؟ از زمانی که پشت کردیم به فرهنگمون به دینمون به آینمون من میخوام شاد باشم بیا لوتی بیا ارتو بزنم کیف بکنیم هم در شادی و هم در غم اگر مؤمنی در روز جمعه اهل قبله باشه اهل تقوی باشه اهل خدا باشه در شب جمعه یا روز جمعه بمیره دف نبو بمیره حالا دفنش هم شنبه باشه، جای خودش ولی اگر در شب جمعه یا روز جمعه بمیره از عذاب قبض در امانه و اگر در مدینه هم بتونه کسی بمیره یعنی خودکشی نکنه اونجا مرگ طبیعیش اونجا بیاد، بره سفر عمری اونجا تنبیرش باشه که بمیره اولین گروه که قبر ازشون باز میشه بعد از پیامبر، اهل بقی هستن قبرستان بقی در مدینه پیانبر صلی اللہ هر کسی میتونه در مدینه بمیره در مدینه بمیره یعنی از خدا بخواهد که اگر میخواهی عجلم را برسانید طوری باشه که من تو مدینه باشم حضرت عمر رضی الله عنه دعا می‌کرد خدایا شهادت در راه خودت و دفن و مرگ در شهر پیامبره. یکی میگه یا امیرالمومنین چه دعایی است میگه شهادت خوبه با شمشیر بردارید بیرون بعد هم میگه مرگ در شهر پیامبره. گفت شما چی می‌دونید حالا من خودم میدونم چه دارم میگم سبحان الله تو محراب پیامبر در شهر پیامبر ایستاده بود از پشت خنجر زرتشتی و مجوسی خورد. تو محراب ایستاده بود. وقتی که ضربه خورد کسی رو فرستاد گفت نگاه کن کی به من ضربه زده گفتن یک مجوسی فارسی ابو لولو گفت الحمدلله که از خودم و از مسلمان‌ها کسی این کارو نکرد. الحمدلله به آرزوم رسیدم. بعد فهمید که این خنجر دلب بود و زهرالود و شهادتش در همین ضربه است دعاش مستجاب شده پسرش عبدالله رو فرستاد پیش ام المومنین عایشه رضی الله عنه همه برو سلام مادر برسان بگو که امیر المومنین ضربه خورده و امید داره که این ضربه شهادت باشه یه خواهشی از شما داره مادر این حجره و اتاقی که هست مال شماست یه قسمت حجره پدرت خوابیده عبوبکر یه قسمت حجره شوهرت و همسرت رسول الله صلی و اونجا حق توست تو با اونها محرمید ولی من دوست دارم که بین این دوتا باشم خواهش میکنم حق شماست ولی اجازه گرفتم یعنی اگر شما اجازه بدید من بیام اونجا کنار این دو بزرگوار دفن بشم آدم باید برای خودش تلاش بکنه خنجر خورده ولی خون ازش داره میره ولی به فکره که کجا دفن بشه آخر ام المومنین گفت باشه سلام امیر المومنین برسان دوگو اشکال ندارد شما اینجا دف بشوید منو در قبرستان بقی دفن کنید چون من همیشه میشنیدم از رسول الله صلی اللہ وسلم که همیشه اسم این دو نفر بر زبانش بود اگر بیرون میرفت میگفت خرجت و انا و ابوبک و امر. اگر داخل می می گفت دخل تو انا و ابوبک و عمر اگر مینشست اگه بلند می شود. همه حرف و حدیثش این دو نفر بود اما اون سه جملهی که باید برای صاحب تعذیه بگید پس سه تا جمله باید خود اون مصیبت دیده بگه چی شد؟ الناهال الله و اینا علیه اللهم عجورمی فی مصیبتی و خلف لی خیرا منها. به فارسیش، به فارسی هم بگید سه تا جمله باید کسی که برای تعذیه میره به مصیبت دیده بگه. اعزم الله اجر کنم. خدا اجر شما را بزرگ قرار بده. به شرطی که سب کنید و احسن عزاکم هم دعاست و هم تذکره و عزاداری شما را حسن، زیبا، نیکو به گفته خمون جون قرار آدد. چه دعای زیبایی و احسن عزاکم تعزیه شما تعزیه خوبی باشه و غفره لمیتکم دلشونم به دست میاره خدا میت شما را غریق رحمت و مغفرت کند ما هم این سه جمله رو به این بازماندگان عزیزمون تقدیم میکنیم الله و و احسن عزاکم و غفر علمیتکم بگید آمین جمله وسطی الان مشکل ساز شده احسن ازا اکوم. همینطوری که در شادی من فرهنگ من بر باد رفته اصالت از دست رفته فرهنگ بی تقوایی و بی افتی تو عروسی ها حاکم شده تو ازاداری ها هم فرهنگ بی سنتی حاکم شده همش من و سلیقه شخصی است یکی میان میگه مادرت یا پدرت مثل کولی خشک ما تو سرو میشنویم مثل کولی خشک زیخاق شزد نه می نه خیراتی، نه نه چیزی به مردم شدا مثل کولی خشک شزد زیخاق دست خوشدکون برگشته هر کسی پدرش، مادرش دوست داره زورش میاد که این طوری بهش بگن اگر شده بره پنج میلیون تو من قرض بگیره پلو به مردم بده که کسی نگه مادرشو مثل کولی خوش دیر خاک زد دیگه حرف خدا و رسول خدا براش مهم نیست که آیا این ازاداری طبق سنت خدا و رسول خدا یا نه عزیزی در محله ما فوت کرده بود سنت که همسایه ها غذا ببرن این سه روز خانواده این دست به سفید و سیاه نزنه اصلا آتش روشن نکنه. بلشنا صبحانه نهار شام همسایه ها حتی اگر صاحب میت و مصیبت میلیونر باشه بحث میلیونیری نیست بحث همدردی است که این سه روز اینها داغ دارن عزادارن ناراحتن مشکل دارن ما باید بریم اونجا چه سفره بندازیم غذا برامشون تهیه بکنیم سفره بکشیم جلویشون ظرفای نشسته هم بگردیم خونه بشوریم حالا مهمانی از راه دور قوم خیشاش آمدن اشکال نداره ولی کل شهر اونجا جمع بشن که پلاو خوریست خیلی اشکال داره خب ما گفتیم که یک روزشم ما سهم ما بدید بیاریم وقتی که بردیم اونجا روز جمعه بود تحویل لادیم برگشتیم یکی از بچه هایی که حالا اونجا بود میگه تا دیگ آوردن داخل یه زنی بلند شد سر دیگ باز کرد اون طرف سر اون دیگ باز کرد اون طرف نگاه کرد این غذاست که آوردن دسر که نداره نوشابه و ماست سبزی که نداره فلان که نداره سبحان الله چطوری دندانش تیز کرده، زن همسایه آمده نشسته، چطوری از دلت در میاد که بگی په کجاست؟ برای تو نیاوردم، برای این داغدیده ها آوردن، پس سبزیش کجاست، په لیوش کجاست، په و سنی الان تو باطلاق گیر کردن تو سه تا اصراف اصراف عروسی اسراف ازاداری اسراف حج پول حج دو میلیونه سوقاتیش ده میلیونه طرف آب زمزم جلوش گذاشتی با خورمای مدینه بازم امید داره وقتی در اتاق باز میشه یه پلاستیکی درسته یا نه؟ آب زمزم بهش دادید خورمای مدینه ما آزمزم ما شوره وله آب زمزم به هر نیتی که بنوشی به نیت پاکی تهارت به نیت شفا آب زمزم خورده خورمای اجوای مدینه هم خورده نشسته تا در اتاق باست پلاستیکی چیزی نیومد. طرف دو تا گاب خریده بود چند تا کوچ میگفت هنوزم تمام نمیشه دیگه کوچ میارن گاو گوساله من دیدم تو فرودگاه بندر عباس باور بکنه آمدن استقبال حاجی همونجا خون میکنن اینم بدونید اگر گوسفندی یا گوساله یا بوزی جلوه پای کسی خون بشه اگر بسم الله الله اکبرم گفته بشه خوردن این گوشت چون خون و زف رو پای کسی زف برای اللهه. اینا فرهنگ دینی ماست. قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين. چلو پای عروس خون میکنن. روی پای حاجی خون میکنن. هر کدوم یه دوربین چه ماشین عروس داره میره چه حاجی همجود بو بو بو یکی تو پنجره تو پنجره ماشین نشسته شیشه پایین کسی اینطوری دوربین رو دسته یکی از اون طرف یکی تو بالا نشسته یکی سرش آورده از شیشه بالا چیه حاجی رفته که اونجا التماس بکنه خدایا از تقصیرات هم در بگذر این همه سر صدا مال چیه؟ بعدم حاجی برگشته این کباب و این بسات و هنوز دست و پاش بو مکه داره میاد بلا فاصله 20 تا قلیون تو خونه شاخ کردم که مهمونایی که دارن میان پذیرایی بکنه. آور بکنی هر حجی و هر عمرهی حد هر نفری دو میلیون سه میلیون سوغات میقرد طرف واجب حج واجب العمره است چون پول سوغاتی نداره حالا توش مونده به خاطر اسراف کمرش و گردنش داره سنگینی میکنه چون برش واجبه پول عمره داره هفت ست هشت داره ولی چون که چه پول اصالتی نداره یک واجبی که برگردانش واجب شده حالا توش مونده نمیره سخن مردم اسراف عروسی که تو دلت بخواد اسراف عزاداری که دیگه وحشتناکه الان شیعه و سنی توش موندن شاید عروسی تو 20 سالته تکه تک تک جمع بکنید خیلی فشار بد نیاد برای پسره پارچه طلایی چیزی کلیری یخچالی ولی مرب یک دفعه میاد یک دفعه پن میلیون از کجا میدارید یک دفعه هفت میلیون از کجا میزارید؟ سه روز و هفته و چه روز و چار ماه و سال و آقای قراعتی تو تلویزیون من خودم تلویزیون باز کردم صحبت میکرد آقای قراعتی شیعه هست یا سونیه؟ آخنده یا فرد عادیه؟ از روحانی اونه بزرگ شیه میگه یک نفر فوت کرده بود خودم شنیدم با این گوش خودم میگه رفتم تعزیه فرهنگی بود گفتم که مرگ حق است و این چطوری است که در خانه همه میخوابه و زانو میزنه شما چرا اینطوری گرفته هستید حالا شاد باشید میگه ناله بپذیرید شما که فرهنگی هستید ماشاءالله معللم هستید و مردم عادی چی گفت جناب آقای قراحتی من میدونم که این مرگ چطوری است که در خانه همه میخوابه ها ولی من میبینی که سرم گرفتم به خاطر یه حقوق بگیر ما ها دویس تو من الان باید برم 5 شیش ملون قرض بکنم به خاطر پلو خوردن این و اون بعد آخوال قراطی میگفت حرامه حرامه حرامه به هم دیگه رحم بکنید نکنید این کار میگم شیعه و سنی توش موندن. این چیزها مختص شیعه نیست مختص سنی هم نیست من خودم شنیدم. تو محله خودم. امون بخونم مثل کولی خوشگیز از خاک رفت شد. مجتی پیدا بودن؟ وحاوی این چیه؟ آقای قرارتی وحاویه؟ وحاوی شو انسان که عقل و شعور داره که دیگه پنجاه تکه که پارچه میارن در خوند میزنن هر پارچه دهزار ده تومن نمیشه با نوشتش؟ بعضی موقع این پارچه ها تا در روز 3 روز یک هست. دیگه چیکار می‌فهمین اینا پارچه. نمیشه با این پارچه خله لباس دوخت. یا ماشین پاک میکنه. یا شیشه های تو خانه پاک میکنن. آشپزخونه پاک میکنن. پارچه حالا نوشته هم داره. رحلت جانگداز پدر فلانی شما فلان فلان. یا این پارچه‌ها تو آشغال دونی یا با چیزی پاک بکنین. چرا عاقل همین سه تا جمله برود؟ پیشش رو در روبش بگو اعظم الله اجركم و احسن عزاءكم و غفر للميتكم دیگه اگر که جوان فوت بکنه بعضی جاها دیدم که وقت غسلش میدن حنا پاش میدن حنا دستش میدن که این حنا داماد نشده بعد کفنش که گرفتن بیرون که میبرن نقل و پول و خورده و شکلات رو قارود به چه کاری آخه؟ کدوم پیغمبری کدوم قرآنی گفته اگر جوان دامان نشده حنا دست پاش بدید تو جنازش بذارید تو روانی و نقل بریزید روش و کیکنگ بزنید هر کسی یه چیزی آورده دیوار کوتحتر از دیوار دین هر کسی یه خدایی شده و یه چیز داره میچسبنه به دین خدا ما انزل الله به هامن سلطان ما باید پاک بکنیم زندگیمون خداوند این عزیزمونو غریق رحمت بکنه و قبرش باقی از باقی های بهشت بشه و مردگان ما و شما همه غریق رحمت بشن و قبرشون باقی از باقی های بهشت بشه و در فردوس علا خداوند اونجا در جوار انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرارشون بده و به ما زندگانم رحم بکنه که زندگی آبرومندانه و روسفیدی خودمون و خانواده و فرزندانمون و مرگ روسفیدی و خاتمه و خیری نصیب به بگید آمین هفته هفته وحدت این چند تا جمله چون اینجا بالاخره هم تشیق و هم تصنن در کنار هم هستن و الحمدلله من که چیز خاصی نشنیدم که در طول این سالها بالاخره مشکلاتی پیش آمده باشه خدای نکرده که منجر به رفتارهای نادرست بشه حالا شاید بعضی افراد حالا همه جا هستن خوبه بد تو شیعه هست و سنی هست اونهایی که دور اندیشی نمی‌کنن بالاخره هفته وحدت این شعار خیلی شعار زیبایی و به میمنت هفته تولد پیامبر صلی الله هر سال این هفته بالاخره اعلام میشه از مسئولین و علماء و روحانیت تشریع و تسنن رفت آمد میکنن تو مساجد تو مراکز همدیگر ولی از خدا می خواهیم که این یک چیز نمایشی و شعاری و ظاهری نباشد این نکته خیلی مهمه که وحدت ریشه در دل داره یعنی ما قلبن خواهان وحدت در امت اسلامی باشیم یعنی بخواهیم که وحدت داشته باشیم با وجودمون با قلبمون نه با زبانمون و نکته دوم در وحدت این که وحدت ریشه در ادالت دارد مهمترین آمل وحدت عدالته. اگر توسط دولت کریمه و نظام مقدس و مسئولین این ادالت برقرار بشود ادالت حقوق شهروندی حق و حقوق اون که مسئول نه این که خودشو صاحب حق بده اون که این مملکت نیست حقش پایمال بشه اون که شیعه است اون که سنتیه قائل بشن اون که عقلیت اون که فلانه اون چیزی که حق همه است به طور عادلانه تقسیم بشود به طور عادلانه اگر وحدت باشد، اگر عدالت باشد، هیچ موقع چه اختلاف پیش نمیآید. آید. مسئله بعدی، یکی از نشانه های عدالت اینه که هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بدیم. مثلا من سنی میگم وحدت با شیعه، اما میام به خودم و اهل سنت نمره 20 میدم، به شیعه چون که شیعی سونی نیست نمره صفر میدم به نظر شما اون شیعه دیگه با من وحدت ایجاد میکنه یعنی شیعه پونزه نمیگیره دوازه نمیگیره سفر یا اون شیعی چون خودش شیعه است و همه شیعن به خودشون بیس بدن به سونی بدن سفر یعنی سونی ده نمیگیره دوازه نمیگیره 15 نمیگیره حالا 20 نه 17 بده 15 بده این دوباره تبعیزه به صرف این که طرف سنی حالا مشروبخار باشه مواد فروش باشه ظالم باشه من خوشم بیاد چون اسم سنی رو یادت میکشه و چون که فلانی شیعه اصلا شیعه معتدل خوش فکر عادل خوب خیر خوا داریم به صرف این که اسم شیعه رو داره یدک میکشه، بگم چه؟ اون نه، صفر اینطوری نباشه که من از شیعه خوب معتدل خیرخواه دلسوز متنفر باشم چون سنی نیست و از مشروب خار تریاک فروش، مواد فروش، مشروب فروش ظالم که جوانای ما رو همه تباه کرده چون که حالا سنیه خوشم بیاد که سنیه تو نمره دادن سعی بکنیم که وگر نه مشکل پیش میاد اگر افراد عادی عامل اختلاف باشن بین شیعه و سنی بزرگان قوم علما ریستفیدهای شیعه و سنی گوششون میگیرن تذکرشون میدن مشکل حل میشه ولی اگر مسئولین و بزرگان شیعه و سنی آمل اختلاف باشن چه میشه؟ که گوششون میگیره؟ باید بزرگان دو طرف از خدا بترسن این بندگان خدا که در کنار هم دارن زندگی روز کنن روز حتی وصلت هم با هم کردن در خیلی از مناطق چه شیعه به قدرت برسه در این مملکت و چه سنی به حکومت و قدرت برسه نمیتونن همدیگه رو حس بکنن از قدیم بودن در کنار هم ها؟ نه سنی هست شده نه شیعه هست شده هم شیعه وجود داره و هم سنی وجود داره حالا حکومت داره میچرخه؟ بعض مواقع دست شیعه میفته بعض مواقع دست سنی افتاده در قبل دولت های استفقی ولی که بازم سنی وجود داره بازم شیعه وجود داره پس بهترین راه اینه که به فکر حسب هم دیگر نباشیم وقتی قدرت میگیریم بلکه به فکر تعایش باشیم در کنار هم زندگی بکنیم آگاه باشیم تا این شعارهای زیبا هفته وحدت واقعا لذت بخش باشه برای و وگر غیر از این باشه و نیتی غیر از این پشت این شعارها باشد هیچ موقع وحدت تحقق پیدا نمی کنه. این صحبتها رو دل سوزانه هم به مسئولین شیعه به بزرگان شیعه و هم به بزرگان اهل سنت هفته گذشته من گلدار بودم بخشدار بوده شهردار بوده شورا بودن مردم عادی شیعه تو جلسه بودن پنشش نفر. همه بودن در کنار همدیگه همین صحبت ها رو کرده. دیشب تو گروه کردم، تو بلغان کردم، تو لطیفی، تو لار، اطراف لار. مرا هر جای مراسم بوده تو این یک هفته ده روز صادقانه، خالصانه به خاطر که ما از وجود همدیگه لذت ببریم. جزاکم الله خیر، از حوصله همه شما هم تشکر میکنم. خیلی حوصله کردید ساعت الان دوست آخرن مهمان نوازید آخرن اخوندید، ناشرنده محبت های شما میشیم